سلطان ولدت قونیه 3 ربیو سه کم کم دارم نگران حال برادرم میشوم اگر چه علاءالدین همیشه همین طور بوده عصبی و حساس بچه هم که بود زود جوش می آورد اما این اواخر انگار همیشه عصبی است انگار روی تیغ نشسته فوری عصبانی می شود. به نظر میرسد دنبال کسی می گردد تا دق دلیش را سرش خالی کند. کوچکترین مسئله ای باعث می شود داد و هوارش به آسمان برود. آنقدر عصبی است که حتی بچه های کوچه هم تا چشمشان به او میافتد فرار را برقرار. ترجیح میدهم. هنوز هفته سالش تمام نشده اما از بس اخم کرده صورتش مثل پیرمردها چین افتاده. همین امروز صبح دیدم یک چین جدید کنار لبش افتاده. لابد برای اینکه مدام لبهایش را جمع می کند. امروز خودم را وقف کار کرده بودم. و داشتم نوشته های پدرم را پاک نویس می کردم که پشت سرم صدایی نامحسوس شنیدم. علا بود. لب پایینش را به دندان گرفته بود و زیر چشمی نوشته هایم را نگاه می کرد. معلوم نبود از کی بی سر و صدا پشت سرم ایستاده و تماشایم می کند. نگاهی از سر بیحوسلگی به من انداخت و پرسید چه کار می کنم؟ گفتم یکی از رساله‌های قدیمی پدرم را رونویسی می کنم. می خواهم همه تقریراتش را پاک نویس و نسخه برداری کنم. علا به فهمی نفهمی با حالتی مسخره نگاهم کرد. پرسید چه فایده ای دارد؟ مگر متوجه نیستی؟ پدرمان درس دادن و موعظه کردن را رها کرده. دیگر در مدرسه هم تدریس نمی کند. تمام مسئولیتهایش را کنار گذاشته. داری کار بیخود خود می کنی. حرفش را بریدم. گفتم این وضع موقتی است. وقتش که برسد مطمئنم درستادن دادن را دوباره شروع می کند. گفت تو خودت را گول میزنی. مگر نمی بینی پدرم برای کسی جز شمس وقت ندارد؟ درویش که باید آواره و سرگردان باشد در خانه ما کنگر خورده و لنگر انداخته علا با حالتی تمسخرآمیز خندی. به نظرم آمد منتظر است من هم همرایش کنم و بخندم اما وقتی دید دهانم را باز نکردم ساکت شد و با حالت عصبی شروع به راه رفتن در اتاق کرد بعد حرفش را ادامه داد همه جا حرف ما را می زند. در دروازه را می شود بست در دهن مردم را نمی شود همه یک چیز می پرسند. چطور می شود درویشی یک لاقبا عالمی به آن عظمت را سر انگشتانش بچرخاند؟ اعتبار پدرمان شده برف زیر آفتاب به تموز. اگر فوراً به اوزا سر و سامان ندهد و به خودش نیاید یک طلبه هم برایش نمی ماند. کسی دیگر به استادی قبولش نمی‌کند خب حق هم دارند به برادرم نگاه کردم پشت لبش تازه سبز شده بود اما با حرکت دست و بازو و طرز حرف زدن و رفتارش می‌خواست بگوید من هم مرد شدم از پارسال تا حالا چقدر عوض شده میدانستم عشقی پنهان دارد و دل به کسی داده. اما نمی توانستم بپرسم خاطر چه کسی شده. زیر زبان نزدیکترین دوستانش را کشیده بودم. اما از آنها هم چیزی دستگیرم نشده بود. گفتم: «اللا می میدانم شمس را دوست نداری. اما مهمانمان است. باید احترامش را نگه داشت. بعدش هم تو چرا به حرف مردم گوش می دهی؟ نباید از کاه کوه ساخت. همین که این حرفها از دهانم درآمد پشیمان شدم. خیلی از موضع بالا حرف زده بودم. اما دیگر چاره ای نداشتم. علاائین مثل کاه علو گرفته بود. گفت: پس از کاه کوه میسازم ها؟ به این بدبختی که سرمان آمده میگویی کاه انگار کوه شدهی و نمی بینی صفحه دیگر به دست گرفتم سطح ظریفش را نوازش کردم. خوشحال بودم از اینکه کلمات پدرم را رونویسی می کنم. و به این ترتیب کمک میکنم تا عمرشان طولانی شود اینطوری بعد از یک قرن هم مردم میتوانند تعالیم پدرم را بخوانند و فیض ببرند از اینکه نقشی هرچند کوچک در انتقال این معلومات از نسلی به نسل دیگر داشتم احساس غرور میکردم علاءالدین بی سر و صدا آمد بالای سرم با چشمانی پرسکینه و بدبینی به کاغسهای پیش رویم نگاه کرد. لحظی در چهره اش کودکی نیازمند محبت پدر دیدم. در آن لحظه فهمیدم علا از دست شمس عصبانی نیست. از دست پدرم عصبانی است. علا از دست پدرم عصبانی بود. لابد با خودش میگفت به اندازه کافی از او مراقبت نکرده و نمی توانست بپذیرد با همه اعتبار و مقامش در برابر بیماری که مادرمان را در جوانی به کام مرگ کشید هیچ کاری از دستش بر نمی آمده. علا اددین زیر لب گفت: همه میگویند شمس پدرمان را سحر کرده میگویند شمس را هشاشین هش فرستادهاند. حرفش را بریدم گفتم هشاشین هش فرستادهاند تو هم این مزخرفات را باور میکنی دستم را روی شانهش گذاشتم گفتم مگر نمیدانی که حشاشین دیگر مثل سابق نیستند خیلی وقت است پراکنده شدهاند فقط اسمی از آنها مانده یادگار زمانه عوض شده علاعالدین طوری که انگار این احتمال را در نظر بگیرد گفت بله اما می‌گویند، سه فرماندهٔ صادق حسن صباح موفق شده اند از دست تعقیب کنندگانشان جان سالم به در ببرند. مخفیانه از قلعه علموت خارج شده اند و همقسم شده اند هر که بروند بلوا بپاک کنند. یکی از اینها به قونیه آمده. به نظر من که شمس است. دیگر کم مانده بود کاسه سبرم لبریس شود. گفتم انصاف داشته باش حالا گیریم شمس رهبر هشاشین باشد اگر این طور است چرا بخواهد پدرمان را از بین ببرد گفت چون از آدمهای با نفوذ متنفرند و دوست دارند آشوب به کنند خب مگر پدرمان آدم معتبری نیست حداقل زمانی صاحب اعتبار بود. چنان اسیر توهمات و توطعههای خیالی شده بود که از هیجان ناشی از حرفهایش لپهایش گلنداخته بود. وقتی با او حرف می زدم متوجه شدم که باید بیشتر مراقب باشم. گفتم ببین برادرم آدمها بدون آنکه فکر کنند هرچه به دهنشان برسد این اینجور داستانها را جدی نگیر دهنت را از شک و غرض پاک کن. نمی‌بینی دارند مسمومت میکنند علاعالدین با حالتی رنجید خاطر چند نفس عمیق از بینی کشید اما چیزی نگفت در ادامه حرفهایم گفتم مجبور نیستی شمس را دوست داشته باشی اما به خاطر پدرمان هم که شده کمی احترامش را نگه دار. با دقت و دلخوری نگاهم کرد. شاید برادرم فقط از دست شمس عصبانی نبود یا فقط از پدرم نرنجیده بود. از من هم دلخور بود که معیوسش کرده بودم انگار بها دادن به شمس نوعی ضعف و بزدلی بود شاید به نظر او برای به دست آوردن دل پدرم چاپلوسی می کردم و طوری رفتار می کردم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده دلم شکست اما باز هم نتوانستم از دستش عصبانی بشبم. هر هرچه باشد برادر کوچکم بود. نگاهش که می کردم پسر بچه می دیدم که در کوچه ها دنبال گربه ها می کند. توی چاله های شده از آب باران می رود و پاهایش را گلی می کند. و تمام روز نانماستی سق می زند. آن بچه نسبتاً توپل که قدش نسبت به سنش کمی کوتاه بود، خبر مرگ مادرش را کشنید یک قطر اشک هم نریخت. خبر را که به او داده بودند، تنها کاری که کرده بود این بود که سرش را خم کند و پاهایش را نگاه کند. انگار که از چارخهایش خجالت کشیده باشد. لبهایش را جمع کرده بود و در همان حال مانده بود. کاش می توانست گریه گذاری کند. کاش اینقدر همه چیز را توی خودش نمیریخت. پرسیدم: یادت هست توی کوچه با بچه ها دعوا کرده بودی؟ همان دفعی که گریه کنان به خانه آمدی از دماغت هم خون میآد؟ مادر خدا بیا مرزمان آن موقع چی به تو گفت؟ صورت علا روشن شد، اما جواب نداد. مادرمان گفت اگر از دست کسی عصبانی شدی یا کسی دلت را شکست، توی ذهنت شهره آن آدم را با چهره کسی که دوستش داری عوض کن. خب. این را امتحان کرده ای که چهره شمس را با چهره مادرمان عوض کنی؟ شاید اینطوری چیزهایی دوست داشتنی در وجود او پیدا کنیم. تبسمی نامحسوس بر لبان علاءالدین نشست. دلم آب شد. برادرم را در آغوش گرفتم. او هم پس از مدت‌ها تنگ در آغوشم گرفت آن هنگام گمان کردم همه چیز راه می شود و میانهش با شمس خوب می شود گمان کردم خانه من آهنگ سابقش را پیدا می کند چقدر صاف و ساده بودم اشتباه بزرگتر از این نمی شد